هزار افسان برنامه از گروه جوان و فرهنگ نام خدای بی همتا سلام و درود فراوان بر شما همراهان ارجمند کودکان افسانه‌ها میآورند درج در ها سدگون پند افسانهها ها روایت های ساده و ایستا نیستند پویایی مداوم و حرکت در افسانهها ها چهره زنده و فعال به اونها میده گویی که افسانه نه حکایتی بازگو شده از هزاران سال پیش بلکه روایت زندگی روزمرهی ماست و ما افسانه این هفته ما افثانه ای ایرانی به نام افسانه با اقل و بی عقل برگرفته از کتاب قصه‌ها و افسانه‌های از گوش و کنار ایران تدوین و گردآوری محمد جعفری قنواتی که امیدواریم از شنیدن این افسانه ایرانی لذت ببرید در روزگاران خیلی دور در گوشه از کشور پهناورمون مردی زندگی میکرد که از فهم و کمال سهمی داشت و از مال دنیا بهرهای نداشت بله، کار مرد افثانه ای ما این بود که با پای پیاده از شهری به شهر دیگه میرفت یه روز همینجور که داشت پیاده میرفت توی راه به مردی برخورد کرد که شطوری داشت و دو کیسه بزرگ بر روی اون بار کرده بود و خودش هم بر بالای دلنگه بار نشسته بود و آواز میخوند و شطر رو به جلو میروند مرد افسانی ما با خودش فکر کرد که هرچند پیاده و و این مردم سوارست و حسابی سر اما بالاخره هم سفری با اون خوبه و میتونم راه دراز رو با گفتگو با اون کوتاه کنم بنابراین رو به مرد سواره کرد و گفت اه سلام دوست عزیز همسفر نمیخوای مرد سوار نگاهی به مرد افسانه ما انداخت و جواب داد چرا؟ اتفاقا منم داشتم از درد تنهایی برای خودم آواز میخوندم مرد پیاده گفت اه وقتی تو رو دیدم خوشحال شدم پیاده روی و خستگی جای خودشا ولی از تنهایی بیشتر حوصلم سر رفته بود حالا تا هر جا که با هم هستیم میتونیم حسابی با هم صحبت کنیم سواره گفت پیاده و سواره فرقی نداره اصلا چیه؟ پیاده بودن بهتره وقتی شطور نداری هیچ وقت شطورت مریض نمیشه هیچ وقت شطورت رو دز نمیبره هیچ وقت شطورت فرار نمیکنه وقتی هم خونت رسیدی قصه یه کاه و جو برای شطورت رو نداری و راحتی مرد سواره مکسی کرد و با خنده ادامه داد <تصفيق> آسوده کسی که خر نداره از کا و جوش خبر نداره <تصفيق> بعد از مرد ای ما پرسید تو چی فکر میکنی سفر؟ خب شما فکر میکنید مرد افثانه ای ما چه جوابی به مرد سواره داد بهتر ما هم در این باره یه کمی فکر کنید بله مرد افثانهی ما در جواب مرد سواره گفت والا چی بگم اما من فکر میکنم کسی که خر نداره اگه بار داشته باشه مجبور خودشون رو به دوش بکشه اگه راه دور میره باید به پای خودش زحمت بده ولی خب من من از پیاده روی بدم نمیاد مرد سواره خنده یک کتایی کرد و گفت <تصفيق> واقعا تو اینطور فکر میکنی؟ مرد پیاده گفت بله من وقتی فکر میکنم خودم بارم رو هم میکنم خیلی هم خوشم میاد ولی اگه سوار شطر باشم خیال میکنم شطر زیر پام از من شکایت میکنه مرد سوار خندید و گفت خب اینم حرفیه آدمایی که شتر ندارن این فکرا رو میکنن وگرنه خداوند شتر رو آفریدی که بار بکشه و خار بخوره بعد خنده کرد و گفت ببینم سفر این دل سوزیای بیخودی رو بذار کنار اگه تو سوار نشی یکی دیگه سوار میشه مرد پیاده گفت آه به حالت شطور خوبی داری خدا اونو بهت ببخش بعد نگاهی به بارش شطور انداخت و گفت مثل اینکه بارش خیلی سنگینه ها راستی توی این کیسه‌ها چیه سواره گفت یکی از ها گندمه یکیشم شنوریگ، اونارو میبرم خونه مرد پیاده با تحجو پرسید چی؟ پر از شن و ریگ اونا رو برای چی میبری خونه؟ سواره گفت ریگ و شنا رو برای چیز به خصوصی نمیبرم چون گندم یه لنگ بیشتر نبود و روی شطور بند نمیشد این کیسه رو پر از شن کردم که دو لنگه بشن و روی شطور بار کنم و خودمم بتونم روی بارا بشینم مرد پیاده از شنیدن این حرف خندید و گفت چی گفت؟ آها باید سب کنید الان براتون مرد ای ما که از شنیدن حرفای مرد سواره خندش گرفته بود گفت آفرین آفرین آفرین آفرین عجب اختراعی کردی خب برادر من عوض این کار خوب بود گندومار رو قسمت می کردی و توی دوتا کیسه می زشتی تا دوتا لنگه بشه. بعد به شطورت می بستی و خودت هم روی اونا مینشستی. اینجوری هم شطور سبکتر بود و هم بار کردن و پیاده کردن کیسه ها آسون تر بود. سواره با خوشحالی گفت آه آفرین باریکلا چطور عقل من به این نرسی معلوم میشه که خیلی باهوش و آقلی ها به بعد اضافه کرد باعث خوشحالی منه که با مرد آقل و باهوشی مثل تو هم سفر شدم مرد پیاده گفت من چندان هم باهوش و عاقل نیستم اینکه گفتم یه موضوع خیلی ساده و معمولیه سواره با خودش گفت خوبه این مرد چیز فهم رو هم سوار کنم خوبه بعد یه دفعه فکری کرد و پرسید خب خب خب ای مرد حکیم راستش رو بگو تا بدونم تو کی هستی با این عقل و فهمی که داری حتما وکیلی شاید هم سلطان ها نمیدونم برحال باید یه آدم بزرگی باشی پیاده گفت ای بابا ای بابا من کجا و وکیل و سلطان بودن کجا؟ من یادم عادی و معمولیم مثل همیه آدما دانشمندم نیستم. میبینی که احوال منم گواهی میده. لباسم هم ساده است مثل بیشتر مردم. خلاصه مرد سواره ولکن معامله نبود. و اصرار داشت که مرد ای ما حتما شخص والا مقامیه. ولی ما میدونیم که اونی آدم معمولیه معمولیه مثل خیلی از ما بله گفتیم که مرد سوار فکر میکرد مرد افثانی ما خیلی باهوشه بنابراین گفت اینجوری که نمیشه با این همه عقل و هوش حتما پول زیادی داری که دلت با اون خوشه و فکرت آزاده که تونستی موضوع گندما رو به این راحتی حل کنی ها؟ پیاده گفت از غذا من توی هفته هاسمون یه ستارم ندارم حالا هم که با تو راه میرم نمیدونم فردا چه کاری میکنم و چی میخورم سواره گفت خب لابد دکان و دم و دستگاهی داری ها؟ اگه پول نقد نداری حتما جنس زیادی داری چه فرقی میکنه مطلب اینی که آدم دانا باید توانا باشه و خوشبخت مرد پیاده گفت اینم نیست دوست من من اگه دوکون داشتم تو اون میشستم و معامله میکردم و این همه خودم و زحمت نمیدادم برای یه،, یه لغم نون پای پیاده از این شهر به اون شهر برم مرد سواره گفت معلوم آدم توداری هستی و نمیخوای مقامتو لو بدی مرد افسانه ما گفت ای بابا مقام چیه کشک چیه؟ چی چی دادی میگی خب حالا که مقامت رو منکر میشی حداقل از شطر و گوسفندت بگو ببینم چوپون نمیخوای من یه چوپون خوب و کاری سراغ دارم ها پیاده که دیگه از دست مرد سواره خسته شده بود گفت ببین ببین ببین ببین چی میگم من نه اسب دارم نه شطر و گوسفند نه دکون و پول البته خدا رو شو. تنم سالمه کار میکنم و نون میخورم الانم برای کار به یه شهری نزدیک دارم میرم چون چند روزیه که بیکارم مرد سواره گفت عجب آدم عوضی و بیخودی خودی هستیا. یه مرد بینوا مثل من که یه لنگ بارم گندم و یه لنگ اون شنوریگه با این بی سوادی و بی اقلی که میبینی ده تا شطور دارم صد تا گوسفند دارم پنجا تا گاف دارم و دو تا مزرعه غلام و کنیز ده تا اتاق بزرگ و جیک خلصه یه زندگی آسون و راحت دارم آه. مرد پیاده گفت <تصفح> خوشحالت، واقعا خوشحالت. پس معلوم این تویی که مقام والا داری نه من مرد. مرد سفاره گفت <تصفح> تازه من یه اتاق پر از کتاب خطی دارم که کلی قیمت داره اون وقت تو که میدونی گندم رو چجوری باید بار کرد و راحت بود هیچ چیزی نداری پس فایده این اقل و کمال کو ها؟ کجای زندگیت رو گرفته؟ و بعد دلش به حال مرد افسانه ما سوخت ولی ترسید حالا چرا؟ الان براتون میگم مرد سواره و پیاده کمی که پیش رفتن مرد پیاده گفت دوست من، ببینم تو توی مزرعت به کارگر نیاز نداری؟ من میتونم اونجا، هنوز حرفش تموم نشده بود که سواره فریاد زد تو، تو، تو، تو، کارگر مزرعه من بشی؟ <تصفيق> زود باش، زود باش، از من دور شو، میترسم نکفت تو منو بگیره، دور شو عقلبی خاصیت یعنی شومی، دور شو، دور شو، دور شو، از من فاصله بگیر، از من فاصله بگیر پیاده گفت، باش میرم اما با این همه تو در نظر من آدم احمق و بی اقل و بدبختی هستی اینه که گفتی همه رو با پول خریدی و خودت یه آدم بی عقل بیشتر نیستی من هیچ وقت نمیخوام مثل تو باشم پیاده اینا رو گفت و از مرد سواره جدا شد و از راه دیگهی رفت و به راهش ادامه داد از جدا شدن مرد افسانه ما از مرد سواره دو وطورور سوار دیگه سر رسیدن که از غذا دو و راهزن بودن و از مرد سواره پرسیدن زود باش بگو بار چیه سواره در حالی که سخت ترسیده بود جواب داد. همین الان یه نفر همراه من بود که از اون راه رفت اون میگفت که من آدم بی و بدبختییم بار شوترم هم چیز با ارزشی نیست. یکی از راهزن ها پوست خندی زد و گفت تو <تص> گفت ما باور کردیم بعد با چاقو یکی از کیسه ها رو پاره کرد تا ببینه چی توشه که از غذا کیسه شن و ریگ بود و مقداری شن و روی زمین ریخت راه زنان که اینطور دیدن چند پس گردنی به مرد سواره زدن و گفتن رستی که آدم بیعقل و نادونی هستی. سهرا پر از ریگ و شنه اون وقت آدم بی اخت کیسه های شن و ریگ باره شطرت کردی؟ اخ. خلاصه راه اینو گفتن و رفتن شطر سوار که باری گندمش تصادفی نجات پیدا کرده بود لبخندی زد و با خوشحالی گفت آفرین آفرین بر بیعقلی خودم که ریگ و شن بار کردم وگرنه گرنه گندم های نازنینم از دست میرفت از اون روز به بعد مرد اگه صد تا شطور هم گندم بار می کرد، یه لنگر رو ریگ و شن پر می کرد و به پند و حرف هیچ کس هم گوشت نمیداد. و در جواب مردمی که به عقلون می می گفت من چیزی میدونم که شما نمی دونی. افسانه ایرانی بی اقل و با اقل رو براتون نقل کردن بر از کتاب رسه و افسانههایی از گوش و کنار ایران تدوین و گردآوری محمد جعفری قنواتی مردم کوچو و بازار افسانه‌ها رو در طول تاریخ حفظ کردند و سینه به سینه و نسل به نسل اونا رو منتقل کردند امروز هم حفظ و ثبت و ضبت این میراز معنوی از ضرورت فرهنگی هزار افسان کار مشترکی بود از نویسنده زینت سالحپور ویراستار بهار گیویان اجرام مهران دوستی صدا بردار زهره صابری تایپ کننده زهرا عبدالله زاده افثانی دیگر بدرود